به نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه‌ها های ساده، صمیمی و روان از زندگی مردمان این کره خاکی‌اند و در ظاهر ساده‌ی اونها هزاران رمز و راز نهفته است که در زندگی ما جای تأمل دارند. افثانه ای رو براتون نغم کنم به نام افسانه گل میخک برگرفت از کتاب افسانه‌های ملل به گردآوری و ترجمه هروس شبانی در روزگاران گذشته در سرزمینی اون سوی دریاها ملکه زندگی میکرد که سالیان بسیاری از داشتن فرزند محروم مونده بود ملکه هر روز صبح به باغ میرفت و به درگاه خداوند دعا میکرد که فرزندی به اون عطا کنه مدتی گذشت تا اینکه خداوند دعای ملکه افسانه ما رو مستجاب کرد و فرزند پسری رو به اون عطا کرد. پسری که نیروی آرزو کردن داشت. پادشاه و ملکه از دنیا آمدن فرزندشون خیلی خوشحال شدن و همه مردم اون سرزمین رو به جشن و شادی دعوت کردند. روزها از پی هم میگذشتن و ملکه هر روز صبح با فرزندش به باغ میرفت و با آب زلال چشمهی که از اونجا میگذشت کودک رو میشست. هیروس ملکه در گوشه باغ در حالی که پسرش رو توی دامان خودش خوابونده بود بی اختیار به خواب عمیق فرو رفت. در همین موقع آشپز قصر که میدونست پسر دارای نیروی آرزو کردن پسر رو با احتیاط از دامن ملکه برداشت و بعد مرغی رو سر برید و خونش رو روی پیشبند و لباسهای ملکه پاشید و با سرعت کودک رو برد و در محلی پنهان کرد آشپز بعد از این کار سراسیمه نزد پادشاه رفت و گفت جناب پادشاه جناب پادشاه پسرتون پسرتون وارث تاج و تختتون از دست رفت پادشاه با شنیدن این حرف وحشت زده از جا بلند و پرسید چی میگی؟ چی شده؟ پسرم کجاست؟ آشپز باشی با ناراحتی گفت ملکه، ملکه قربان، ملکه براحتی گذاشت حیوانات وحشی پسرتون رو از روی دامنش ببرن پادشاه با ناباوری و عصبانیت گفت این غیر ممکنه، ملکه همیشه مراقب اون بوده این چه حرفیه که میزنی مردک؟ آشپز باشی برای اثبات حرفش پیشبند خونها ملکه رو به پادشاه نشون داد و پادشاه وقتی خون رو روی پیشبند هم سرش دید این حکایت رو باور کرد و چنان خشک این شد که فورا دستور داد برج بلندی بسازن که نن نور خورشید به داخل اون بتابه و نن نور ما و ملکه رو در اونجا زندانی کرد تا هفت سال بدون آب و غذا در اونجا بمونه از گرسنگی و تشنگی بمیره اما اما در همه اون هفت سال دو کبوتر سفید روزی دوبار برای ملکی بیگنا قضا می. گذشت و آشپز با خودش فکر کرد آه. چون این پسر نیروی آرزو کردن داره ممکنه برام درد ایجاد کنه چیکار کنم آه. بهتره از این قصر برم و قصر رو برای همیشه ترک کنم بله این بهترین کاره و به این ترتیب آشپز قصر رو برای همیشه ترک کرد و به محلی رفت که پسر رو در اونجا پنهان کرده بود. پسرک بزرگ شد و حالا دیگه میتونست به راحتی حرف بزنه. بنابراین آشفت باشی به اون گفت پسر جان زود باش به خونه بزرگ و مجلل یه باغ سرسبز و زیبا و تعدادی نوکر و خدمتکار آرزو کن. هنوز این کلمات از دهان پسر خارج نشده بودن که همه اونا در یه چشم زون آماده شدن. آشپز باشی با خوشحالی فریاد زد. آفرین پسر! آفرین! ما دیگه به چیزی نیاز نداریم و راحت زندگی میکنیم. درسته که آشپز باشی این حرف رو زد ولی خیلی زود. از پسر خواست. حالا چی خواست؟ الان براتو میگم. بله. اون به پسرک گفت این اصلا درست نیست که تو تا این ها تنها باشی بهتره آرزو کنی دخترکی هم سن و سال خودت به عنوان همدم و همبازی برات حاضر بشه تا از تنهایی در بیای پسر پسر هم اطاعت کرد و بلافاصله آرزو کرد که دخترکی زیبا در برابرش ظاهر بشه و در یه چشم هم زدن دخترک در مقابل دیدگان پسر ظاهر شد پسرک با خوشحالی به دخترک گفت: ای دخترک زیبا خوش اومدی بیا بیا با هم بازی کنیم و هر دو دوستان خوبی برای هم شدن روزها گذشت و پسرک و دخترک با هم بزرگ شدن آشپز پیر هم هر روز مثل یه اشرافزاده به شکار میرفت و خوش میگذروند اما اما یه روز آشپز پیر به این فکر کرد که نکنه پسرک افثانه ما که در واقع شاهزاده جوانی بود یاد پدرش بیفته و آرزو کنه پیش پدرش یا همون پادشاه باشه اون وقت ها اون وقتی که اون توی دردسر بزرگی میفته و برای اینکه مانع چنین اتفاقی بشه یه روز به دخترک گفت امشب وقتی این پسر خوابید باید بری و با خنجری که من بهت میدم اونو از بین ببری و دخترک با وحشت فریاد زد خدای من این این وحشتناکه من هیچ وقت این کارو نمیکنم آشپز پیر تهدید کنن گفت تو باید هر کاری گفتم انجام بدی وگرنه جون خودتو از دست میدی آشپز این حرفو گفت و مثل همیشه به شکار رفت دخترک با خودش گفت آخه آخه من چطور میتونم جون یه پسر بیگناه رو بگیرم اون تا به کسی کوچکترین آزاری نرسونده این درست نیست که من به اون آسیب برسونم نه نه نه ممکنه و بعد دختر به فکر چهار افتاد وقتی آشباز از شکار برگشت از دختر پرسید آه امیدوارم کاری که بهت گفته بودم انجام داده باشی درسته انجام دادی؟ دخترک با نارتی گفت من من قاطر به انجام دادن این کار نیستم باور کن این کار سخت و بحشتناکیه هاشفز با عصبانیت و تهدید کنن گفت تو فقط تا فردا فرصت داری این پسر رو از بین ببری وگرنه خودم هر دوی شما رو از روی زمین بر حالا خوب فکراتو بکن خوب فکراتو بکن و باز به شکار رفتن آشپز دختر دستور داد گوسالی کوچکی رو زپ کردن و زبان و قلب حیوان رو توی سینی گذاشت و وقتی که از دور دید آشپز پیرتر بر میگرده به پسر گفت که تو تخت خواب خودش دراز بکشه و خودش رو با ملحفه بپوشونه طولی نکشید که آشپز از راه رسید و از دختر پرسید خب بگو ببینم را فکراتو کردی؟ دختر جواب داد بله همون کاریه که گفتید انجام دادم و بعد ملحفه رو به کناری انداخت در این وقت شاهزاده فریاد زد ای پیر مرد ملعون تو میخواستی منو از به این ببری؟ حالا حالا سزای عملت رو میبینی؟ من آرزو میکنم تو به یه سگ پشمالوی سیاه تبدیل بشی که زنجیر طلایی به گردن داشته باشه و زغال داغ شعلور بخوره و از دهانش آتیش بیرون بیاد هنوز این حرف از دهان شاهزاده خارج نشده بود که آشپز بجنس به سگ سیاه پشمالویی تبدیل شد که یه زنجیر به گردن داشت و وقتی زغال داغ میخورد از دهنش آتیش بیرون میزد بله آشپز به سزای بجنس بودن خودش رسید مدتی گذشت و شاهزاده و دختر روزهای بسیاری رو در خونه زیبا و با شکوه موندن و کم کم شاهزاده جوان افسانه ما بیاد مادرش افتاد و چون نمیدونست مادرش هنوز زنده است یا نه به دختر جوان گفت من به خونه نزد پدرم برمیگردم اگه تو هم با من بیای خیلی خوشحال میشم دختر گفت افسوس افسوس راه طولانی و, و دوره و من در یه سرزمین ناآشنا چیکار کنم اما شاهزادی جوان خیال نداشت که دختر جوانو تنها بذاره و بنابراین آرزو کرد که دختر به گل میخک زیبا و معتری تبدیل بشه تا بتونه اونو با خودش ببره اونا راه افتادن به طرف قصر پادشاه و سگ پشمالوح سیاه یا همون پیرمرد مرد بدجنس هم ناچار بود که به دنبال اونها به شاهزاده رفت و رفت تا به سرزمین پدرش رسید و مستقیم رفت سراغ برجی که مادرش هرون زندانی بود و چون ارتفاع برج خیلی زیاد بود نردبانی رو آرزو کرد که به بالای برج برسه بعد از نردبون بالا رفت و از پنجره کوچک برج نگاهی به داخل انداخت و صدا زد مادر عزیزم بانو ملکه آیا هنوز زنده و سلامتی ملکه با ناباوری جواب داد تو کی هستی پسر من پسر جواب داد بله من پسر تو هم پسری که گفته میشد شد وحشی منو از دامن تو رو بودن ملکه با خوشاری گفت خدای من تو زنده ای این ای غیر ممکنه پسر گفت من زندم و به زودی تو مادر عزیزم و آزاد میکنم و بعد پسر از نردبون پایین اومد و یه راست رفت به قصر پدرش و در اونجا خودش رو عنوان شکارچی ماهری معرفی و اعلام کرد که میخواد در خدمت پادشاه باشه ولی پادشاه گفت ای جوان من در صورتی میتونم تو رو اینجا نگه دارم که مقداری زیادی گوشت آهو و گوزن برای آشپسخونه سلطنتی آماده کنی؟ آیا قادر به انجام دادن این کار هستی؟ پسر یکمی فکر کرد و گفت نگران نباشید من به اندازه کافی گوشت ایی میکنم خب درسته که جوان افسانی ما این حرف رو زد ولی اون تا به حال توی همه عمرش حتی یه بچه آهو هم شکار نکرده بود شما فکر میکنین اون چجوری میتونه اون همه گوشت آهو و گوز رو برای آشپزخونه بزرگ سلطنتی آماده کنه جوون افسانه ما به همراه ادهی از شکارچیان و ملازمان برای شکار به راه افتاد. کمی که راه افتادن، جوون بونا گفت فوری همه به شکل نیم دایره بستین. شکارچیان و ملازمان به شکل نیم دایره ایستادند. جوون در وسط نیم دایره وایستاد و شروع کرد به آرزو کردن. طولی نکشید که بیش از دیویست، رأس آهو و گوز به طرف نیم دایره دویدن و شکارچی ها هم شروع کردن به تیگندازی و جوون دستور داد همه اونا رو بار شست ارابه کنن و به طرف قصر آشپسخونه سلطنتی به راه بیافتند خبر به گوش پادشاه رسید که بله شکارچی جوون با دیویست، رس آهو و گوز به قصر برگشته پادشاه. از این خبر خیلی خوشحال شد و اعلام کرد که روز بعد همه درباریان میتونن در ضیافت بزرگی شرکت کنند. بعد وقتی که حاضران همه جمع شدن پادشاه رو به جوان افسانه ای ما کرد و گفت: ای شکارچی جوان، چون تو جوان بسیار باهوش و کارامدی هستی، میتونی در کنار من باشی؟ و جوون هم همین کار رو کرد و در همین حال بیاد مادرش افتاد و در دل آرزو کرد یکی از درباریان درباری وضع و حال ملکه چیزی بگه هنوز آرزو نکرده بود که داروغه شروع کرد و گفت قبل عالم ما در اینجا در شادی و خوشحادی به سر میبریم اما بانوی ما ملکه در اون برج بلند چگونه میگذرونه آیا ایشون هنوز زندن یا اینکه دار فانی رو بدا گفتن؟ اون با خوب و مهربونی بود قبل آلم پاچا با ناراحتی گفت اون زن با بی توجهی خودش باعث شد من تنها پسرم را از دست بدم من چطور میتونم بیاده کسی باشم که باعش شده هیوانای وحشی پسرم رو تکه پاره کنن نه نه نه نه من مایل نیستم چیزی درباره اون بشنوم آ اگه پسرم الان زنده بود من چقدر خوشحال بودم و اشک از چشماش زرای شد با این حرف پاشا همه در سکوت سنگینی فرو رفته. زران در زیافت پادشاه چند دقیقه سکوت اختیار کردند. در این موقع جوان افسانه ما از جاش بلند شد و گفت پدر عزیز و مهربانم من پسر شما هستم من زندم با گفتن این حرف همه نگاه ها به طرف جوون بریشت پادشاه با ناباوری فریاد زد این غیر ممکنه تو،, تو پسر من نیستی پسر من رو حیونای وحشی رو بودن جوان پادشاه رو به آرامش دعوت کرد و گفت پدرجان آرام باشین این حیونای وحشی نبودن که منو رو بودن بلکه اون بد بدجنس وقتی که مادرم در خواب بود منو از دامانش رو بود و خونه ی مرد رو, رو روی پیش بندش پاشید جوان این رو گفت و بعد سگ زنجیر طلایی رو به حاضران نشون داد و گفت این سگ همون آشپز بدجنسه که به این شکل در اومده همه یه نگاه ها به طرف سگ زنجیر طلایی خیره موند در این موقع جوون آرزو کرد آشپز به شکل اولش برگرده و همینطور هم شد و آشپز پیر در حالی که پیشبند سفیدی به کمر وسته بود در برابر همگان ظاهر شد به محض اینکه نگاه پادشاه به آشپز پیر افتاد فورا اونو شناخت و فریاد زد این من اون رو رو بسیار چال بندازید تا از گرسنگی و تشنگی از بین بره اون اون باعث شده من همسر مهربونم رو سالها توی برج زندانی کنم و از دیدن پسرم محروم بشم و بعد پادشاه پسرش رو در آغوش کشید در این موقع شاهزاده جوان به پدرش گفت پدرشان آیا دوست دارین دختر جوونی رو که در همه این سالها دوست و همدم من بوده و حتی جونش رو به خاطر نجات من به خطر اندخته ببینین؟ پادشاه با خوشحالی گفت البته البته پسرم که دوست دارم اونو ببینم و شاهزاده جوان گل میخک رو از سینش بیرون کشید و اون رو روی میز سلطنتی گذاشت و همه حاضران اعتراف کردند که تا به حال گلی به این زیبایی ندیدن چند دقیقه گذشت و گل میخک هنوز روی میز قرار داشت شاهزاده گفت پدر حالا خود دختر رو به شما نشون میدم و بعد آرزو کرد و در یک چشمم زدن دختر جوان به مراتب زیباتر از همیشه در برابر پادشاه و درباریان زائل شد بله شاهزاده جوان افسانه ما همسر آینده‌اش رو به پدرش معرفی کرد و بعد به همراه هم به سراغ ملکه مادر که هنوز توی همون برج بلند زندانی بود رفتند. اما ملکه دیگه زنده نبود. تمام سرزمین در مرگ ملکه به غم فرو رفتند. همه هد بودن که وقتی ملکه رو به خاک می دو دوتا کبوتر سفید در بالای مغبر اون به پرواز در اومدن. اونا همون کبوترهایی بودن که هر روز برای ملکه غذا می بردن. پادشاه که خودش رو مقصر مرگ همسرش سرش هر روز خودش رو سرزنش میکرد. کرد. هم چند روز بعد از قصه و ناراحتی از دنیا رفت و مدتی بعد پادشاه جوان بر تخت پادشاهی نشست و با دختری که مانند گلی در سینه خودش نگه داشته بود. عروسی کرد. و هیچ وقت از زیاد پدر و مادرش خافل نشد و سالهای سال در کنار همسر مهربونش زندگی کرد افثانه گل میخک رو برگرفت از کتاب افثانه ملل به گردآوری و ترجمه هروس شبانی براتون نقل کردم. گرچه افسانه ها از سرزمین های مختلف اومدن، اما وطن خاصی ندارن و متعلق به همه مردم جهانن. افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحپور گیراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار اکبر میکاین تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانی دیگر بدرو